فحتا وی به عضویت انجمن آثار ملی درآمد و در ساختن آرامگاه فردوسی و جشن هزاره او نقشی فعال داشت سمتهای دولتی مثل ریاست انبار قله در سالهای قهتی نان در تهران بر عهده او بود همچنین کتابخانه و چاپخانه مجلس را به راه انداخت امینی هزار صفحه صدوهل سه روز فعالیت در تصویب قانون به نفع اقلیت‌های مذهبی انجمن زرتشتیان تهران را تشکیل داد امینی 1380 صفحه 144 و مادام العمر به ریاست آن انتخاب شد آتشکده تهران یا آدوریان با پایمردی او و سرمایه پارسیان ساخته شد قریه کاخ فیروزه و زمین آرامگاه زرتشتیان را با تلاش فراوان به دست آورد امینی 1380 صفحه 146 و چندین مدرسه زرتشتی به همت و پیشنهاد او احداث گشت استاد جوانمرد نوزر نوشی روان که از کودکانی بود که مانک جیوی را به تهران آورد و در مدرسه شبان روزی به تحصیل واداشت در این دوران به تحریر اسناد مالکیت مروی زرتشتیان همت گماشت و در این باب کمک بزرگی کرد شه مردان 1363 صفحه 453 احوالات شخصیه زرتشتیان اینک بنابر قوانین مدنی رسمیت قانونی دارد و این امر به کوشش ارباب کیخسرو شاهرخ صورت گرفت. امینی 1380 صفحه 145 و در واقع این مستقل بودن به دنبال اقداماتی حاصل شد که با تشکیل انجمن زرتشتیان در ارتباط بوده است. امینی 1380 صفحه 5 بنابر اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زرتشتیان همانند دیگر اقلیت‌های مذهبی در احوالات شخصی خویش استقلال دارند. این استقلال در انقلاب مشروطیت و سپس در تدوین قوانین مدنی در زمان پهلوی اول استحکام یافت و در زمان پهلوی دوم دارای رسمیت قانونی شد. امینی 1380، صفحه 5 همچنین بنابر قانون هر زرتشتی ایرانی یکی از افراد طبعی ایران است و طبعی ایران در مقابل قانون متصاویل حقوقند. امینی 1380 صفحه 141 مشخصه مهم دوران تجدد یعنی برابری قانونی با دیگر هموطنان ایرانی برای زرتشتیان مقتنم بود. آنان در پرتو کار و کوشش و نیز درستکاری و صداقت راههایی تازه در پیش گرفتند و وضعی تازه یافتند که پیشتر از آن برخوردار نبودند. رسیدن به مشاقل گوناگون دولتی و آزاد پرداختن به صناعی تازه و داشتن انجامنها و مجامع رسمی از مشخصه های مهم دوران تجدد در مائیه است. همچنین گذشته از برخورداری آنان از مدارس زرتشتی و نیز امکانات تحصیلی به صورت عام باید به دو نکته متمایز توجه کرد. یکی چاپ کتاب و مطبوعات ویژه است و دیگری زبان و لباس زرتشتیان در دوران معاصر. درباره کتاب و چاپ آن در جامعه زرتشتی باید به پیشینه اقدامات زرتشتیان در این باب در هندوستان توجه داشت البته نخست باید انتشار کتاب زرتشتی را به چندین گروه بخش کرد یکی کتاب که شرق شناسان به زبان خارجی تعلیف نمودند دیگری تکثیر و چاپ نسخه های قدیمی و دست نوشته های زرتشتیان چه از ایران و چه از هندوستان سوم کتاب هایی که زرتشتیان در زمینه های عمومی به چاپ رسانیدند ماننده سامنامه منصوب به خاجبی کرمانی که آن را اردشیر خازه در بمبعی 1319 خورشیدی تصحیح و منتشر کرده است. چهارم کتابهایی که در ایران درباره دین زرتشتی و حتی تاریخ ایران باستان و های باستانی ایران انتشار می‌یابد. پنجم کتاب های زرتشتی که پارسیان هندوستان به خط گوجراتی انتشار می‌دهند. پانویس در هندوستان متن کتاب اوستا را هم به خط گوجراتی درآوردند و نیایش‌های اوستایی را با آن خط می‌خوانند مثل ما که اوستا را به خط فارسی چاپ کرده‌ایم و می‌خوانیم. ادامه متن در اینجا منظور هیچ کدام از این چند گروه نیست بلکه منظور فعالیتی است که در هندوستان برای چاپ کتاب برای زرتشتیان ایران به خط فارسی یا گاهی دین دبیر آغاز شد و از آن پس در ایران هنوز به نحوی ادامه دارد. کتابهای های چاپ سنگی که به تعداد فراوان در آتشکت ها و نیایشگاه ها هنوز می شود آنها را یافت، بخش اصلی این مجموعند، یسنا و ویسپرد به احتمام دستور نامدار و دستور رستم خسرو به دیندویره به همین شیوه به چاپ رسید است، کتابهای دیگر مثل جمله خرده اوستای چاپ رستم موبد، رشید خرسند و آموزنده ابن شیرمرد نوزر با تاریخ 1270 یزدگردی بنبایی و خرده اوستای موبد نوشیروان موبد نامدار بهرام مهربان مطبع نادری بمبایی 1928 به خط فارسی از این گروه هست. مشخصه مهم این کتاب‌ها و چاپشان آن است که برای هر چاپ ابتدا کتاب پیش‌فروش می‌شد و هرکس تعدادی از آن را می‌خرید با این پول کتاب به چاپ می‌رسید و انتشار می‌یافت راه دیگر تأمین هزینه چاپ به وسیله خیراندیشان بود ناشری ماننده اردشیر خازه نیز گاهی به چاپ آثاری در این رده دست زده است و بسیاری از آثار شادروان رشید شهمردان را باید از همین مجموعه به شمار آورد آموزنده ابن شیر مرد کتاب شاهنامه فردوسی را با خط اولیا سمیع شیرازی به همین طرز در سال 1282 یزدگردی برابر با 1331 قمری و 1913 میلادی در بمبعی به چاپ رسانید. در این کتاب نه تنها فهرستی از نام کسانی آمده است که کتاب را پیش خرید کردند بلکه تکمله ای دارد مشتمل بر شرح حال و تصویر شمار بسیاری از ناماوران زرتشتی هم ایرانی و هم هندی که با نام کارنامه سترگان شرفای پارسیان مملکت هندوستان زمیمه آن است. پانویس یک نسخه از این کتاب را بانو آبنهیر یا آبان یا آبناهید فرزند اسفندیار یزدانی از هند به ایران آورده و وقف کتابخانه کرده است به نامگانه پدر و مادر خود ادامه متن همچنین نسخه های از ارداوی رافنامه مصور که تصاویرشان احتمالا قدیمی و سنتی بوده است، بویس 1377 صفحات 260 و 261 در میان این کتاب ها وجود داشته و موجب وحشت از عذاب دوزخی و تنبیه بینندگان می شده است. این کتابها که از هندوستان میآمد گنجینه مهمی در خانههای قدیمی محسوب میشد و دست به دست میگشت جز شاهنامه فردوسی فرامرزنامه و جهانگیرنامه و نظایر آنها نیز در همین ردیف بود و بخشی از فرهنگ زرتشتیان را در آن روزگار در بر میگرفت این سنت چاپ کتاب را شادروان کیخسرو راستی خسروویانی 1297 تا 1372 با راه انداختن دستگاه چاب و چابخانه راستی تأسیس تهران سال 1328 به نوعی تداغم بخشید. وی به چاپ آثاری از موبدان دانشمند ایرانی و نیز تقویم زرتشتی دیواری و جیبی از سال 1332 خرشیدی پرداخت همچنین حروف دیندبیره را برای چاپ اوستا وارد کرد و در سال 1345 نخست جزوه را با آن به چاپ رسانید امروزه چاپ کامپیوتری دیندبیره و خط پهلوی را حروف نگاری مزده در دنباله همین سنت انجام میدهد و هنوز چاپخانه راستی و انتشارات س... سازمان فاروهر به نحوی در این زمینه فعالیت دارد جامعه معاصر زرتشتی مطبوعات ادواری ویژه هم داشته است و دارد امروزه مجله ماهیانه فاروهر و نیز دو هفته نامه امرداد و منور منتشر میگردند های کوچک داخلی سازمانها و انجمنها نیز انتشار مییابند مثلا انجمن زرتشتیان کرج نامه کوچکی را به نام واچک انتشار می‌دهد و کانون دانشجویان زرتشتی نویکند را بهرستي از این نشریه ها رو می میشود تهیه کرد که برخی از آنها هنوز به چاپ می رسند و انتشار برخی دیگر متوقف گشته است مانند ماهنامه زرتشتیان بیگمان گمان طولانی ترین عمر این مطبوعات از آن مجله هوخت که از پروردین 1329 تا آبان 1363 در چاپخانه راستی به چاپ رسید نیز مجله می میشود به نوعی نشریه زرتشتی به شمار آورد در همه این نشریه ها و نامه ها بخشی به جامعه زرتشتی و اخبار داخلی آن باز میگردد که از لحاظ بررسی این اجتماع و مسائل آن ارزنده و شایانه توجه است دیگر درباره زبان و گویش بهدینان ذکر این نکته اهمیت دارد که نمیدانیم در چه زمانی و چگونه و چرا جامعه زرتشتی آن را برای گفتن میان خود اختیار کرده است. مزدابور 1374 صفحات 22 تا 46 این زبان را که استلاحاً گویش بهدینان میخانند خود زرتشتیان زبان دری زرتشتی یا گوری و گورونی مینامند. از نظرگاه تاریخی از زبانهای غربی و شمالی ایران است. در آن باجه ها و لغات دخیل از دیگر گویش های ایرانی بسیار است. این زبان در گروه بندی درونی زبانهای ایرانی نه با زبان مقدس اوستایی خیشابندی نزدیک دارد و نه با فارسی میانه که زبان زند و تفسیر اوستا است. همچنین دنباله هیچ هیچیک از دیگر زبانهایی نیست که آثار مکتوب و ضبط شده از آنها بر جای مانده است. این زبان دو زیر شاخه اصلی یعنی یزدی و کرمانی دارد دومی تقریبا اینک از میان رفته است. زیرگویش یزدی از این زبان دارای قریب به بیست لحجه گوناگون است. پیش از این به ندرت یافت میشدند. زرتشتیانی که فارسی را ندانند یا کم بدانند. ولی اینک فقط شاید در هندوستان بتوان کسی را یافت که گویش بهدینان را بلد باشد و فارسی را نتواند حرف بزند و بفهمد. به بیان دیگر، ایرانیان زرتشتی دو زبان مادری دارند، گویش بهدینان و فارسی. امروز گویش بهدینان مانند دیگر زبانها و گویشهای ایرانی به شدت تحت تأثیر فارسی است و به روشنی روبه نابودی می شه تابد. تصاویری از اردشیر جوانمرد پارسی، رستم اسفندیار جوانمرد متولد 1304. خداداد داد بهرام خسرو یا خسرویان وجود دارد. دو مجمع و انجمن‌ها. انجمن زرتشتیان مهمترین مجمع و گروه رسمی در جامعه معاصر زرتشتی است. پیشینه این انجمن ها در ایران به یک تعبیر به روزگار ساسانیان باز می‌گردد. پس از سقوط ساسانیان این انجمن از قدرت افتاد و سپس در دوره خلفا غیر رسمی اعلام شد. امینی 1380 صفحات 281 و 282 در قرن گذشته در ایران مانکجی صاحب در گزد و کرمان انجمنهای زرتشتیان را تشکیل داد اما زرتشتیان اهمیت آن را در نیافتند و وقفه‌ای در آنها افتاد پس از وی که خانصاحب که به جای مانکجی از سوی انجمن اکابر پارسیان مأمور کارهای ایرانیان زرتشتی شده بود کشید تا مجددن سر و سامانی به انجامنها بدهد. وی در تهران و کرمان و یزد انجمنهای ناصری را به نام ناصرالدین شاه بنیاد نهاد و در یزد اساس نامه مشروحی درباره اختیار و وظایف انجمن تدوین کرد امینی 1380 صفحات 282 و 2823 از این سه فقط انجمن ناصری یزد دوام آورد ارباب کیخسرو شاهرخ پس از بازگشت از هندوستان به کرمان انجامن آن شهر را زنده کرد و خود به سمت منشیگری آن به خدمت پرداخت. امینی 1380 صفحه 285. انجامن زرتشتیان تهران به همت اردشیر جی ریپورتر و ارباب کیخسرو شاهرخ در جمادل آخر 1325 قمری امینی 1380 صفحه 285. برابر با 1276 یزدگردی تشکیل یافت تشکیل این انجمن با تشکیل انجمنهای سیاسی پس از مشروطیت مصادف بود و مکاتبات انجمن زرتشتیان تهران با سایر انجمنهای سیاسی در معرفی و به رسمیت شناختن آن تأثیری به سزا داشت امینی 1380 صفحه 282 5. از آن پس انجمن توابع شهری است و شهرهایی چون شیراز 1328 قمری اشیدری 1355 صفحه 294 و بم و اصفهان و زاهدان و اهواز که ساکنان زرتشتی داشتند مستقلاً پدید آمدند امروزه در ممالکی خارج از ایران ماننده کشورهای امریکا، آروپا، استرالیا هم انجمنهای زرتشتیان فعالیت دارد. امینی 1380 صفحه 285 که البته برخی از آنها در واقع مستقیما ریشه به انجمنهای پارسیان هندوستان میبرند. در ایران این انجمنها همگی استقلال دارند و از نظرگاه دینی تصمیم کنکاش موبدان را به رسمیت میشناسند. زنان در آنها حق رأی و حق انتخاب شدن دارند. انتخابات آنها معمولا دو سال یک بار تجدید می شود. اداره ثبت شرکتها این انجمنها را به ثبت رسانده است و وزارت کشور مطابق قانون احزاب و جمعیتها بر انتخابات و کار آنها نظارت میکند. این انجمنها به ویژه انجمن زرتشتیان تهران موقوفاتی دارند و مکلف به رسیدگی به آنها هستند. مسائل و امور دشوار جامعه در سطوح گوناگون به آنان مراجعه می شود و نظارتی کلی و عام بر امور مدارس زرتشتی و آتشکده ها و دیگر بنیاد های اجتماعی و مسائل دینی دارند سازمان های دولتی در صورت لزوم آنها را نماینده رسمی جامعه زرتشتی می دانند و رابطه نهایی میان زرتشتیان و خود می شمارند مجمع دیگری که رسمیت آن محرزه است کنکاش موبدان است در قدیم رسم بود که امور داخلی موبدان ساکنگزد ماننده تقسیم بندی محلات زرتوشتی نشین و دهات برای اجرای مراسم دینی به اسطلاح تعیین هوشت و رسیدگی شکایات و دادن انواع فتواهای دینی را دستور بزرگ انجام دهد. در حوالی سال 1294 خورشیدی که دستور نامدار دستور بزرگ بود و به سفری چند سال رفت موبدان انجامنی تشکیل دادند. ارباب کیخست رو شاخروخ نام کنکاش موبدان را برای آن پیشنهاد کرد در سال 1330 خرشیدی هم کنکاش موبدان در تهران تشکیل شد با وقتهایی چند کنکاش موبدان تهران از سال 1358 کار خود را آغاز کرد امینی 1380 صفحات 297 و 298 گرفتن تصمیمات مهم و عمده دینی بر عهده کنکاش موبدان است. کنکاش موبدانی از علت مهاجرت موبدان و موبدزادگان زادگان رونقی ندارد. سازمان زنان زرتشتی بنیاد 1329 خرشیدی سازمان فروهر جوانان زرتوشتی بنیاد 1339 خرشیدی کانون دانشجویان زرتوشتی تهران بنیاد 1346 خرشیدی انجمن دوشیزگان و بانوان یزد باشگاه جوانان زرتوشتی یزد وقفیاتی مانند پذیرشگاه پارسی تهران بنیاد 1321 خرشید و مجتمع دینی فرهنگی مارکار تهران پارس پذیرشگاه زرتشتیان نرسیآباد یزد و جز اینها همه به انجمنهای زرتشتی وابستگی دارند و دیدارگاه و محل برگزاری مراسم دینی یا پذیرایی از میهمانان و ورزشگاهند بسیاری از این اماکن وقفی را که بیشتر جایگاه برگزاری آینهای سنتی و جشنهایند در واقع باید دنباله حیات و اتاقهای خانه‌های زرتشتیان در شهرهای تنگ با فضاهای محدود دانست در یزد و کرمان در پسکم و بر باغچه آینهای کهن و جشنها و عروسیها برگزار میشد و در شهرهای مدرن در این مکانهای همگانی زرتشتیان که عادتا به این جاها می رفتند و در آنها رفت آمد دارند نوعی احساس همبستگی را تجربه می کنند که گاهی فواید مادی هم بر آن مترتب است و بیشتر فقط تسلای خاطر است و ارتباطی معنوی برخی از این سازمان ها و انجامن خود رسمیت دارند و به ثبت قانونی رسیدند برخی دیگر موقوفاتی که باید انجامن زرتشتیان به سرپرستی و اداره آنها بپردازند در هر شهر این موقوفات وضع و مشخصاتی ویژه دارند که به پیشینه و شکل و نیز شرایط کنونی آنها باز می‌گردد مثلا اداره بسیاری از مدارس زرتشتی را انجمنها به آموزش و پرورش واگذار کردند همه آتشکده ها و نیایشگاه های بزرگ و نیز آرامگاه های زرتشتی زیر نظر انجمنهای زرتشتیان اداره می شوند در تهران مجموعه آدوریان کتابخانه کتابخانه یگانگی بنیاد 1329 و درمانگاه، درمانگاه یگانگی بنیاد 1329 و سالن‌های پذیرایی را در بر دارد آدوریان در سال 1287 هجری با کمک پارسیان هند بنیاد نهاده شد و با همت ارباب کیخسرو شاهرخ در کنار آندبستان دخترانه ایرج را ساخته بودند و بعداً بر زمین های مدرسه ایرج به ویژه با عرباب دکتر اسفندیار یگانگی مجموعه جدید احداث شد. اشیدری شاهروخ 1355 صفحات 88 و 89 کودکستان رستم آبادیان که اصلا با سرمایه شادروان ارباب رستم آبادیان و همسرش منور برخوردار ساخته شده به مدرسه راهنمایی پسرانه بدل گشته است در یزد مهمانسراهایی چون پذیرشگاه پرورش هست باقی وقفی در شیراز پذیرشگاه خوبی دارد در کرمان خانه های قدیمی زیبا و آکنده از یادگارهایی دلنگیز هست که میتوان از آنها به شکلی تازه بهرهبرداری کرد سه، مشاقل و پیشهها. در دوران ساسانیان و پیش از آن سخن از چهار طبقه یا چهار گروه اجتماعی در ایران می این طبقات عبارت بودند از جنگجویان یا ارتشتاران، روحانیان، کشاورزان و پیشوران و صنعتگران. در جامعه زرتشتی پس از ساسانیان و شرایط جدید آن به ویژه با آمدن مقال و شاهان متاسب آن طبعا این نظام در هم ریخت زرتشتیان که می هرچه بیشتر دور از مراکز قدرت و سروت باشند به زندگانی روستایی در نقاط دوردست پناه بردند بایس 1377 صفحه 244 در تغییری جدی که در وضع طبقات پدید آمد گرچه پهلوانان زرتشتی به دلاوری و جنگیدن می‌پرداختند، طبقه جنگیان از میان رفت ولی موبدان همچنان مستقل ماندند با از روی آگاهی های کنونی می‌توان گفت که مشاغل زرتشتیان آم یا غیر مبد اصولا دو نوعه اصلی شد کشاورزان در دهات و بازرگانان و وابستگان آنان در شهر. البته کارهایی مانند پیلوری و خدمات خانگی و کار کردن برای دیگران چه در روستاها و در مزاره و چه در نزده بازرگانان ثروتمند هم رسم بوده است همچنین خدماتی مانند چارباداری و رفت آمد بین شهرها. پانویس در کرمان پیلهبری برای زرتشتیان پس از لغو جزیه مجاز شده و در یزد چندان مرسوم نبود است ادامه متن به بیان دیگر ضمن اینکه اکثریت مسلمان جامعه مترود و منفور و نجس گبر را به درون خود راه نمی‌دادند زرتشتیان نیز از آمیختن با دیگران پرهیز می‌کردند این جدایی امید هر نوع شغل رسمی و دولتی را از آنان سلب می‌کرد و عملا مشاقلی چون مناسب سپاهی و کشوری خارج از دسترس زرتشتیان میماند از آنجا که بخش اصلی دستمزد و دستاورده کار خود را ناگزیر میبایست برای جزیه بدهند و نیز بیگاری سخت از آنان میکشیدند و حتی زنان حامل را به کشیدن دیوار وادار میکردند اشی 1355 صفحه 226 کمتر سرمایه و سود و ثروتی در دست زرتشتیان باقی بود بازرگانان متمکن که از راه های دشوار و داهیانه نسلن در نسل توانگر بودند و یا بازی زیرکی به مال و مکنت می رسیدند، باز بنابر شواهد موجود همواره در جامعه زرتشتی وجود داشته و تکگاه عموم مردم فقیر بودند، مثلا در سال 1644 میلادی یکی از زرتوشتیان کرمان به نام رستم فرزند بندار با هزینه خود آتشکده ای را بنا کرد بایس 13727 صفحات 245 و 246 زرتوشتیان متمکن را می شود همچنین با قیاس از وضع اخیر گفت که هم اموال خود را مصروف به کارهای عامل منفعه و سودمند برای همکیشان می کردند. مثلا امینی 1380 صفحات 223 و 224 هاشیه و هم آنکه لابد بخش مهمی از پرداخت جزیه جامعه را بر عهده می گرفتند. پرداختن به کشاورزی با طبیعت آموزش های کیش زرتشتی و توصیح های وندیداد و تفاسیر و همسازی و هماهنگی تام دارد. در فرگرد سوم وندیداد میخوانیم که شادترین زمینان است که دهقان بکاردش بند چهار و بندهای بیست و سی سه بهترین صوابان است که دهقان از کاشته خود به مردم خوردنی دهد بندهای سی و چهار و سی پنج نزدیکی به طبیعت و پرداختن باز در با ضرب اهنگ فصول به رشد و ساز و برگ گیاه تسلای عمیق خاطر بود و مهارتی پدید می‌آورد که نابغزیر همواره با ارسیه کاردانی و دانش کهن زرتشتیان را بدل به کشاورزان داننده و کوشنده و شایسته می‌کرد تا جایی که به یاد می‌آید کشاورزی بیشتر بر روی زمین‌های اربابی و با آب مالکان، خواه زرتشتی و خواه مسلمان انجام می‌گرفته است در جریان زمان در واقع در انزوای حیات روستایی و ساده همه نقشهای کهن و دیرین زندگانی باز مانده است و چه بسا که شرایط بی تغییر و ثابت اندیشه و آین از روزگار ساسانیان را به پذیرفت که همچنان برقرار مانده بوده است. در چون این محیطی بود که همه افکار و اخلاق و آموزه‌های دیرین کیش و فرهنگی عتیق می توانسته زنده بماند و دور از شرایط حاد و داغ مسائلی که در جهان بیرونی میگذشته و جریان داشته است اندیشه موبدان ساسانی و کوتاه زمانی از پس آن همچنان منجمد در یخ‌های ژرف با برودت سخت و ثابت، زنده و سالم، یخزده و دست نخورده بر جای باشد و دوام بیاورد و به قرون و آثار جدید برسد. انگامی که امکان درس خواندن در مدارس فراهم آمد و نیز با رفع تبعیضات به دست آوردن مشاغلی در دستگاه‌های دولتی امکان یافت. زرتشتیان به این کارها روی کردند نیز در دستگاههای تجاری دیگر زرتشتیان و یا مؤسسات زرتشتی همچنان به خدمت می پرداختند. کار دیگری که مستلزم داشتن سرمایهای چندان نبود و یا فراهم آوردن سرمایه برای آن میسر میگشت رانندگی بود و انواع تعمیرات خدماتی از این دست و نیز درس خواندن و آموزگار و دبیر و پزشک و پرستار و مهندس شدن در دوره تجدد برای زرتشتیان میسر بود و این فعالیت ها جایگزین اقتصاد خودکفای سنتی و دیری نگشت. از این روی بود که زرتشتیان از روستاها به تهران و از تهران به اروپا و امریکا و دیگر قاره‌های جهان راه یافتند نکته مهم این است که در عصر تجدد تفاوت و اختلافی میان زرتشتی و غیر زرتشتی احساس نمی شود. به همین لحاظ افراد جامعه زرتشتی از نظر شغلی متفرقند البته با روح موبدان و مشاقل وابسته به آتشکده را طبعا باید مجزا دانست ای را که میتوان در پایان این مبحث افزود، رفتن زرتشتیان به جستجوی کار و شغل است. به هندوستان. گذشته از مهاجرانی که به هندوستان می رفتند، زرتشتیان از ایران برای کسب درآمد بیشتر راهی آن دیار میشدند. این سفرهای دشوار که ثروت در پی داشت، دریچه امیدی برای بهبود زندگانی به شمار می رفت و مردان جوان توهیدست یا پرشور و طالب وضع بهتر را به هندوستان می کشانید. خانواده آنها در ایران در انتظار می ماندند و گاهی در شرایطی پر بیم و امید سالها چشم به راه به سر می بردند. گذشته از مزایا و دشواری‌های این مشاغل، تعدادی واژه خارجی و مقادیر اشیای فرنگی و هندی از این طریق به جامعه زرتشتیان رسیده است که در جامعه اکثریت ایران دیده نمی‌شود. صفحه 101، فصل ششم، آداب و باورهای کهن و تحول آنها در شرایط تازه باورها و عقاید باستانی جامعه زرتشتیان در ایران تا حد دست خوش دیگرسانی شد ضمن که بخش اصلی و بنیادین اعتقادات کوهن همچنان ثابت و باقی ماند برخی از آداب و رسوم قدیمی دیگرگونی یافت این قبیل تغییر و دیگرگونی گرچه گاهی به صورتی چشمگیر با سنت هایی که در کتاب اوستایی دیداد و تفاصیر آن به زبانهای پهلوی و فارسی زرتشتی آمده است مغایرت دارد هماهنگ با پیام آسمانی زرتشت پیامبر با شرایط زمانه همساز است از آنجا که پیام زرتشت بر فراز چارچوب زمان و مکان جای می‌گیرد و سازگاری با هر زمانه و هر اجتماعی در ذات آن عجین است این گونه نوع شدن و هماهنگی یافتن با جهان مدرن در واقع نوعی بازگشت است به اصالت بنیادین و حقیقت دین یک باورها و عقاید ویژه معروف است که آدمی از نظرگاه کیش زرتشتی و بنابر باورهای آن و آموزش‌های زرتشت از آزادی اراده برخوردار است تاکید ورزیدن بر اختیار آدمی و آزادی اراده او به مسئولیت خطیری می می‌انجامد که انسان در برابر خیشتن خیش و مردم دیگر و کل هستی و خداوندگار جهان بر عهده دارد مفهومی بنیادین که اختیار و مسئولیت مردم را بیان می گزیداری است و آن رجحان نهادن و برتری دادن دانسته و متفکرانه نیکی است بر بدی. در های دینی پهلوی همانند با داستان خلقت مانی آفرینش به سان ابزار جنگی منظور شده است برای پیروزی خیر هرمزدی و شر اهریمنی. گذشت که قائل شدن به دو یا اصل مستقل و آشتی ناپذیر میان نیکی و بدی همان سنویت مشهوری است که بنیان اخلاق زرتشتی را میسازد و گزیداری و انتخاب مردم به مسأله معیار و سنجاری است که مایه پیروزی نهایی خیر در هستی است هنینگ 1365 صفحات 88 تا 91 میزان توفیقی که در تمیز میان نیکی و بدی نصیب مردم گردد روان آنان را به شادی بهشتی یا رنج دوزخی خواهد رسانید بنابراین جهادی و کوشندگی و نبردی آگاهانه در کار است که پیروزی در آن در متون پهلوی به آگاهی پرهیزگاران تعبیر می شود بحار 1376، صفات 110 و 120 و جز اینها بنابراین باورها گرچه هر زادن و تولدی به مسابه نوعی شهادت هم به شمار می آید که گزینش دانسته و آگاهانه مرگ محتوم طبیعی و تحمل رنج در سراسر حیات را در پی دارد ولی از سوی دیگر در قبال رنجی که آدمی متحمل می گردد و تلاشی که در این راه متقبل می پاداشی پر رامش نیز در کار است که به شادی و سرزندگی حیات می انجامد. نخواست روان نیکو کردار پس از این زندگانی به بهشت پرخوشی و جاودانه خواهد رسید دوم اینکه شر اهریمنی سرانجام نابود خواهد شد سوم سو اینکه هرمزد شادی را برای یاری مردم در جهان آفرید و تکلیف آدمی شادمان زیستن است و به شادی زندگان یاری رسانیدن مفاهیمی که با شیوه اندیشه و جهانبینی زرتشتی درباره انسان پیوند دارد در این بخش مورد گفتگوست روشن است که مظاهر مادی و عملی چنین برداشتی نیز در همین جا میتواند مطرح گردد